راژیو فیلم ایسا بشیر احمد, احمد نویسنده حسین بهزاد بازیگران احمد سلیمانیا مبارک است نام نامی خدای پاکی که از سر جود و مهربانی بی منتهایش به آفرینش کائنات اراده فرمون فتح علی اوویسی از ریخت و قیافه ی همشون متنفرم مینا باقری تو پیانبر رحمتی شنیدم هر کجا که باشی مایه برکتی افشین زارعی بری توی ریشه اصل و نسبش موسیقی متن آرمان موساپور کارگردان و تهیه کننده نادر طالب زاده درختی در جایی سرسبز از فضای مهالود انتهای تصویر عیسی با چوب دستی بلند از سازنان به پیش میاد موی و ریشی طلایی داره و لباس کتان سفید بر تن داره و خورجینی که از یک طرف بر شانه آویخته چند نفر با لباسهایی همچون عیسی که بعضی از اونها ردای رنگی نیز پوشیدند از طفح های سرسبز بالا میان در میدان شهر بساط بازی و جنگ خورس‌ها برپا است. مردی صلیبی رو بر دوش حمل پیلاتس به اتفاق همراهانش از دروازه شهر عبور میکنن و به میدانگاهی می‌رسند. سربازان همه آماده به خدمت هستند. اورشلیم سی سال پس از میلاد مسیح. سرزمین یهودیه مدت‌هاست در آشوب و انحشار شده. است. ده ها سال است که این سرزمین و مقدس مقهور اشکالگران لیگان گشته. و امپراتوری قدرتمند روم آن را به ای در ساحل شرقی مدیترانه با ساخت. ساعت باراباس و یارانش در مخفیگاه خودشون هستند. باراباس با دیدن پیلاتس عصبی از جا بلند میشه چی کار میخوای بکنی؟ تیرکار رو میکشیم بازار رو به هم میریزیم تو گرد و خاک و شلوغی بازار اون خوک های نجس و سربه نیست میکنیم کشتن رومیا درست نیست اونم درست روز ورود پیلت است این حماقت محضه یوسف تو تحلق رو میکشتی نه یحیا رو کشتن اگه تو شاگرد واقعی یحیا هستی باید انتقام تو بگیری چه رزتی میبری از اینکه در مقابل دیدن نش یک رومی دوتا و رو سریب ببینی دیگه وقتی این حرفا نیست این جایی است. هست جای عمله دوره پیغمبر بازی دیگه تمام شده حالا دوره دوره ماست فهمیدی؟ یوسف و دیگران فقط به بار نگاه میکنن مردم در میدان شهر همچنان مشغول تماشای جنگ خروز ها هستند. جاد با سری تراشیده و حیکل قوی در بین جمعیت پرسه میزنه. جاد و زیلوتی دیگر در کنار اسبان سربازان حکومتی ایستادند که شبین اومده؟ فرمانده گارد دشت <تصفح> <تصفح> شما دو نفر اینجا چیکار بکنید؟ آه، داریم یابوهای قشنگ شما رو تماشا می‌کنیم، جناب پروگراتور اعظم. مسخره می‌کنید؟ اصلاً، می‌خویم تورام باهوشون ببندیم، بگار. جاد از تیرکی که نزدیکش بالا میره و برگردی سرباز میپره. سرباز قمیه کل با جاد درگیر میشه. سرباز جاد رو زمین میزنه. جاد حمله ای میکنه و ضربه‌ای به شکم سرباز وارد میکنه. سرباز در وسط میدان شهر بر بلندی ایستاده و سخنرانی می‌کند. های بو شلیمه یه بدبا. یهودی کینگ بدبا. پای سخت سلیمان و داوود. درگیری جاد با سرباز همچنان ادامه دارد. سربازهای رومی با اسب به میدان میان و مردم او متفرق می‌کند. جاد در دستان سرباز اسیر شده که دو زیلوت دیگر به کمکش میاد اسبان در حال حرکتم که پاشون به تنابی میگیره و دیرک های بازار میفته شیپور حضور پیلاتس نواخته میشه سربازان به صف و مردم آرام منتظر عبور اون منسته به پروکراتور بزرگ امپراتوری اما ویانده غیزار تیبریوس کبیر جنرال فانکوس پیلاتس، خبر پیلاتس و آدریان از مقابل مردم عبور می کنند. کاهنان هم در کنار کاهن اعظم عبور پیلاتس را نظاره گرند. پیلاتس به همراه ادrian و لنتوس وارد کاخ می شند. جنرال، شما راه دور دلایز را پشت سر داشتید. در این مدتی که در روم تشکیف داشتین اینجا خیلی چیزها تغییر کرده یهودی دیگه اون مستعمره ی صابق نیست از ریخت و قیافه همش مترفرم و اینم بهت بگم لنتوس همین الانم دل دل میکنم چی میشه برگردم به روم راستش قربان. نمیخواستیم هنوز از گرد راه نرسیده با خبرهای بد و نهنجار ذهن شما رو مشبش کنیم آه مسئله یه نیست بگید موضوع مربوط به آدمی معروف به ناصری عهد اینجا نیست طبق گزارش ها مردم تمایل زیادی بهش دارن سران معبدم اونو یه تهدید می‌دونن، تهدیدی برای آدیه خودش. <تصفح> خوبه داره یواش یواش ازش خوشم میاد سربره همه در این باره قدری بیشتر تعمال بفرماید از این وقت شناسیش خیلی خوشم اومد اون از طرف هرکس که مامور درست و به موقع سراغ اورشلیم اومده درست و به موقع ادریان گفتید اسمش چی بود ناصری قربان عیسی ناصری پیلاتس پشت میزی با کتاب و قلمدان و شمع میاد جنگلی سرسبس عیسی به همراه حواریون از تپهای بالا میرند. پیامر جلیل از اوان رسالت مقدسش دوازده تن را برگزید که به حواریون مسیح شهرت یافتند. و این است نام های ایشه. دو مرد در دریا، پتروس ماهیگیر و برادرش آندراوس. یعقوب و یوحنا سران زبدی. دو مرد دیگه با مواریش بلند که پدرشونو بغل یوسف لاوی معروف به بارنبا که محبتش به عیسی او را از قبرس به فلسطین برد مردی با مواریش طلایی که نشسته و مشغول نگاشتن با یک پر تای باجگیر مأمور اخس مالیات رومیان که هدایت یافت و عیسی را پیروی کرد مردی تنامند. فیلیپوس چوپان و تداؤس، یعقوب کهتر و برتول ماوس، یوهنای دیلمی که به شوق یافتن عیسی از سرزمین شرقی به اورشلیم آمد، و یهودا فرزند شمعون از خریوتی که از موهبت ایمان هیچ بهرهی نبرد. عیسی به همراه هواریون از تپهی و از بین درختان بالا میرند. حالا عیسی ایستاده و برای اونها که نشستن صحبت میکنه و هواریون سراپا گوشند مریم مجدلیه هم با اونهاست نعمت هایی که خداوند به ما عطا فرمیده است پس بر ماست تا با اخلاس را عبادت کنیم خوشا به حال آنان که نوحه می بر این زندگان زیرا که ایشان تسلی خواهند یافت خوشا به حال بی که روی برمیگردانند به راستی از لذتهای جهانی زیرا ایشان زود است که متنعم شوند از لذایز ملکوت خدا خوشا به حال آنان که میخورند از معده خدای زیرا که فرشتگان زود است به خدمتشان پیان نماید شما مسافران ادمانند مانند سیاهان آیا سیاه میگیرد برای خود راه قصرها، مزرعه ها و انبال نه چنان نیست دیکن برمیدارد چیزهای سبک و با منفعت را پس این باید مثالی باشد. برای شما، ها. جماعتی از مرد و زن هم برای شنیدن سخنان عیسی به آنها میپیوندند، ولی یهودای از به درختی تکیه داده و تمایلی به گوش دادن نداشت. عادت کارگزاران قیصر تیبریوس در تمامی مستعمرات امپراتوری سرکوب بی‌رحمانه شورشیان و ارعاب شدید اهالی بود. چه این که ایشان را رسم بر این بود که گناه قتل رومی را با به صلیب کشیدن تن از بیگناهان جبان نماده آن روز نیز به فرمان جنرال پیلاتس لشکریان روم یکی از نفرات انجمن شورشی زیلوت را از دجان آنتونیا به قصد اعدام بر طفعه جورجتا حرکم داد لنتوس با یکی از سرداران صحبت میکنه اشخار اون شدیم از همون اول اشتباه بزرگ ما بود درسته اما این رومه که تصمیم میگیره نه من و شما باراباس به همراه چند زیلوت دیگه شاهده اومدن رومی ها هستن که در بین اونها جاد صلیب بزرگی را حمل میکنه باراباس رومی ها رسیدن به دروازه قدیم اورشلیم دستور چه؟ بچه ها برید با دستور باراباس زیلوت ها دست به کار میشن و یوسف داد سخن میده هنوازا عقاب کرد به طرف جلجتا از داخل شهر به جمول های دو ارشدید دامود نبی را به خاطر بیارید که چطور با سنگ های این سرزمین جالوتو از اسبا آباد فلا خلافتون رو با این سنگ ها به چرز در بیارید وحثه معود فلا رسید بذارینشون امپراتوری جالوتو سنگ سار کنید مردان جوان و میانسال با صورتهای پوشیده و بعضی باز سنگ به سوی رومیان پرت میکنه بعضی ها با قلاب سنگ دخت پاره را آتیش میزنه چند سرباز از جاد فاصله میگیرن و به مقابله با اونها میپردازند سربازان رومی که از حمله این آگهانی و مردم کافرگیر شدند به دنبال راه فراری که یک زیلوت از بالای پشتبان بر سر سرباز رومی درسته کمکی فرمانده هاشون رو هدف بگیرین ما رومی دیگه ای به کمکش میاد یکی از مردم از پشت سرباز رو میزنه سر سرباز رومیو رو به دیوار میکوبن و اون میفته هرج و مرج ادامه داره حالا در کنار جاد فقط یک سرباز مونده نه شدم این سنگینه ساکت شو لکفت آمن بودی؟ سنده بعد زیرات! مردم و ازیلوت ها تعداد زیادی از سربازان هستند و در نهایت جاد توسط یکی از ازیلوت ها فراری داده میشه پیلاتس در کنار نگهبان ها در قصرش که لنتوس به خدمت میرسه در خدمت قرار خبر حاکی بسیار لاگواری دریافت کردم چه خبرهایی جان گزارش شده در راستای مراسم تسلیب اون محکوم جریانی که خود من برای ارعاب این مردم چموش راهی کرده بودم زندانی کرد. کرده تمو قصر ایلنتوس بیتوجهی و احمال کردی سرورم من بیتقصیرم از بین زندانی های سیاه کال دیج دو تا ببری به طبی و به سلیبشون همین امروز و دو نفر به صلیب کشیده شدند و سربازها شادمان شادمانه تماشا میکنن و بازی میکنن عیسی به همراه هواریون در شهر عبور میکنن که زنی به همراه خواهرش جلوی اونها رو میگیره مردم هم جمع میشه ای خدا به خواهرم تراهم کن اون لاله نمیشنبه هیچی نمیشنبه از وقتی به دنیا اومده گنگ بوده و حرف نزده هیچی نمیفهمه اونو دریام در ایسا خواهر منو دریام خدایام دادم برس ایسا او و در فکر به اونها نگاه میکنه لحظه سر رو میاره و دختر دست بر گوش به خواهرش نگاه میکنه او میشنوه داره میشنوه خدایا خواهرم شفا گیرم احساس می شفا می گیره بزرگتر خواهر شفا یافته در آغوش می گیره تجب نگاه میکنه و عیسی از شفای اون رازی کاهن اعظم از دور شاهد این ماجر است و عصبی ایسا و هواریون به سمت معبد سلیمان راه میفتند چون عیسی برای عبادت به معبد سلیمان وارد شد مردم از هر طرف به سوی معبد شتافتند تا از موهبت دیدار مبعوس قدوس پروردگار بهره بهرمند شوند. عیسی برفراز شد لب سخن گشود و گفت مبارک است نام نامی خدای پاکی که از سر جود و مهربانی بی منتهایش به آفرینش کائنات اراده فرمود و نه آفریدگان خیش را مگر از برای پرستش و تمجید مبارک است نام خدای پاکی که به دست بنده برگزیدش موسای کلیم به ما ناموس پاکیزه تورات را عطافم لیکن ای برادرم امروز باید چه کنیم تا بر گناهان خیش مجازات نشفیم روین کاهن ازم و اطرافیان از این سخنان ناراضی هن. پس آن هنگام عیسی یکا یک بزرگان کهانت تایفه بنی اسرائیل را با سختترین کلمات و تعبیر به باد نکوهش گرفت آنگاه به نفیسندگان فریسی متون مقدس شریعت پرداخت و ایشان را به جهت ترویج تعالیم فاسد و جعلی و ترک موازین شریعت الهی به شدت توبیرد ایسا در پایان خطابش در میان جمعیت متوجه زنی گوش برشت شد پس فرزند مریم بر او رحمت آورد و عیسی به نزدیک زن اومده و دستشو به سمت اون دراز میکنه به نام خداوند توانای ما قد راست کن تا این جماعت بفهمند که من جز حق نمیگویم و این خداوند است که میخواهد من به نام او با این قام سخن بگویم زن که اسایی هم در دست داره به سختی قد راست میکنه و زنان دیگه دور اونو میگیره درون معبد این در کنار دیافان کاهن و دیگه یوسف نجار یک کرولال مادرزاد زاد و شفا داده. چندی قبل مجدلیه یک معلومال را از چنگ دیوان رها کرده. امروز هم یک گوش پشت رو شفا داده. و شما مطمئن باشید که فردا در جاهای دیگه مرتکب شعبد بازی بده بازیت میشه. اون وقت، چه باید گفت؟ لا بود باید بگیم نجات دهنده از راه رسید مبالغه نکنید مبارغه شما چرا سایت هستید جناب گمالایی؟ شما رو چه عوام و خواسین شهر قبول دارند مردی معتدل که حتی اگر کار تمام این امت به افراد بکشه هم حد وسط رو ملاحظه میکنه؟ ما شما را به خدا سوگند این بار مسلحت چهانت رو در نظر مجیدیم من همیشه خیرخواه شما و سایر اعضای شورای سن بوده بودم و هستم به همین دلیل که میگم دشمنی با این مرد چه فایدهی داره اگه پاش راست باشه؟ نباید با اون جنگی چرا که در این صورت به جنگ خدا میریم و اگه دعوی اون درو باشه باز هم شما متظرر نخواهید شد که گذشته زمان حقایق رو برای مردم برملا میکنهعیسی به همراه هواریون در بیابان خشک گام برمیدانید اونها تشنه و گرسنه شدند و پتروس سؤالی مطرح میکنه و همه نیست ای معلم آیا خداوند قادر هست برای ما از آسمان سفرهٔ طعامی نازل کنه. این چه سخنی است که میش خدای بزرگ بر همه چیز توانه است کافیست به تحقق چیزی اراده کند بس هم محقق خواهد شد ولی استاد بزرگار ما میخواستیم با اجابت این تقاضا اطمینان بیشتری به دعوت شما پیدا کنیم و نزول این صفری آسمانی را در حکم یک اید برای خودمون بدونیم ایسا با چوب دستش گامی برمیداره و خاک میشینه. چشمانشون میبنده و ارتباط قلبی با خدا برقرار میکنه. ایسا چشم باز میکنه و برمیخیزه. پتروس و دیگران چشم به آسمون دارند. خداوند می‌فرماید به راستی من تمنای شما را شنید و این سفره را از آسمان برای تا نازل می همه میپذیرند و یهودا کمی نگران نگاه میکنه. ولی اگر احدی از شما بر این معجزه کافر شود او را به چنان نقوبتی که فرمیده هم کتاب امروز بر هیچی که از آدمیم روان نداشته باز هم همه چشم به آسمون آبی می دوزن. لحظاتی بعد، سفرهای قرمز حاوی نان خوراکی و نوشیدنی بر زمین بهن شده به نام خدای توانا از این سفره و طعام آسمانی بخورید معجزه دیگه از عیسی حواریون همگی پای سفره میشینن ولی یهودا نمیخوره و عیسی از اونها دور میشه مجبوری خوشمزه ای خوشمزه هست تمام ماهیایی که خودم سیدشون کردم و خوردمشون از خنگوتی محشر بخور بخور بس شروع خوشگت شده اشغاروتی برای این ماهی دیگه لازم نیست از کیست خرص کنی <تصفيق> دیگه. ای پروردگار مهربان تو را سپاس می گویم تو را سپاس که تغازای بندت را اجابت فرمودی. ایسا که دستانش شروع به آسمون بالا برده بود می پایین میاره و در مقابل عظمت خدا سرخم میکنه. یهودا یهود در دست داره ولی نمیخوره. از بتونم خودمو گور بزنم اینا خواب و خیال مجزس خب کدوم نونو بخور نه نهو قبول دارم نه ما می <تصفيق> ولی اگر احدی از شما بر این مجزه کافر شد او را به چلنلوقبتتی کیفر می دهم کتاب امروز بر هیچچک از آدمیان رابار <تصفيق> گرد را می و از جمع دور میشه. باراباس در کنار جاد و چند زیلوت دیگه در گوشه از شهر با یهودای یه از خریوتی صحبت میگن مسیح خیال پادشاهی داره حالا تو بگو چی توی اون کاسی سرت قایم کردی؟ خنجر کش سابه حواری عوضی هر کسبی سوخت و سوزم داره پس بختر موازب کاسبید باشی پسرشم اون از خاریوتیر آن روز ایسا و هواریون او به سپار شهر نایم بودند بین راه با گروهی از رومیان مواجه شدند که داشتند بطی را به پرستشگاه آن حمل می‌کردند. همزمان اهالی شهر این جسد یگان فرزند بی و زنی را به سوی گورستان می‌بردند. ایسا و هواریون به جمع ازادار نزدیک می شن. سربازان رومی هم اونجا هستن اون چیه عیسی ایسا. عیسی ناصری نگاه کنید عیسی ناصری اومده عیسی زن به پای عیسی میافته ای پسر مریم مگه تولد خودت یه معجزه نبود پس معجزه کن خدا توان قلبه بر هر چیزی رو به تو داده تمنا میکنم التماس میکنم بزرم رو زنده کن به دادم برس بزر مرکم پایت تمنا میکنم ایسا بعد از ای به طرف جمع گریان برمیگرده گریه مکنید او نمرده است به خواب رفته ایسا در کنار پیکر بیجان پسر جوان که در پارچه سفید پیچانده شده میشینه به نام خدا و به ازن پروردگار دو عالم جوان برخیز جوان تکانی میخونه همه ترسیدن عقب برن بوت ساخته شده به زمین میفته ها رم کردن و پسر آرام آرام بلند میشه و می هر چه سریتر برید و به تمام اهالی یهودیه بشارت بدین که خدای بنی اسرائیل بر ما تجلی کرد او را خدا باید نامید. خدا یا پسر خدا یا ارشنیم آماده استقبال از پسر خدای خودتون باشین ما در ناین دیدیم که عیسای ناصری مرده ای را زنده کرد اون پسر خداست در معبد روین با بارباز سرکرده زیلوتها و جاد صحبت میکنه من یه دشمن مشتنک داریم بله روم نه نه کمی فکر کن گمان <المتلاح> می‌کنم که از این حرفها باشید باشی منظورت ایساست؟ نه دقیقا خب الان بهترین موقعیت در دسترس شما است. در قدم اول بهتره که شما بتونه غیرمستقیم با این مرد رو به بشین سناه شایع را دست کن نگیرید سرپه برندهیه به شرفی که برد باشی به خوبی خنجره ازش استفاده کنی بری توی ریشه اصل و نصبش انگوشت بزنی روی ماجرای تولدش نداشتنه بدن از امروز هر کسی که به ایسای ناصری خدا یا پسر خدا لقب بده جاد در بین مردمه و چند نفر رو با خنجر میکشه قصر پیلاتس. پیلاتس پشت میزی نشسته آرهشگر منها شمالتر میکنه و فرمی زنه و آدریان جوان در کنارش ایستاده اینها یهو برای چیه؟ یک آشوبه تازه سربرم. مردم و اوباش زیلوت به جان هم افتادن ظاهرم شورش کردن یک شورش ملایم ولی معتقدم آتش این شورش به همه جا سرایت میده همه چیز با این پیغمبر جلیل شروع شد و همه چیز با او تمام خواهد شد هر کسی میگه ایسا خدا یا پسر خداست باید اونش ریخته بشه املکنیم امونشون هر تشوز... این ترتیب سراسر یهودیه دست خوش آشوب و بلوانگردی دشگریان مشرک رومی که در آغاز از آتش این فتنه بودند اینک مجبور به سرکوبی فتنه زدگانی شدند سران شورای کهانت نیز ابتدا سیاست صبر و سکوت پیش کردند تا به یمن این افتشاش زمینه برای بدنامی هرچه بیشتر عیسی در میان عوام مذهبی مخیّأ شد. در جای جای یهودیه، اهالی شهرها و دهکده ها به مخالفت با یکدیگر در باره عیسی برخواستند و کار به جایی رسید که دسته‌های آشوب‌طلبان خود را مسلح کردند و کمر به کشتار یکدیگر بستند. چهل شبان روز ناامنی و بلوا بر همه جا حاکم روا بود. به گونه ای که پسر در برابر پدر و برادر علیه برادر قد علم کرد سرانجام در اورشلیم، اشراف شهر و شماری از سران شورای کهانت به ملاقات یوسف قیافا کاهن اعظم رفتند و او را واداشتند تا برای برقراری آرامش وارد عمل شود. پس قیافا به اتفاق پیلاتس حکمران رومی و هیرودس پادشاه ایالت جلیل به نزد مردم رفتند و آنان را به آرامش فراخواندند قیافا از مردم خواست تا با او به زیارت عیسی بروند و حقیقت حال فرزند مریم را از زبان خود او جویا شوند مردم نیز پذیرفتند به زودی خبر رسید که عیسی و یارانش در هاشیه صحرای اردن رویت شدند جماعتی عظیم از اهالی اورشلیم و دیگر شهرها به ملاقات او شتافتند. در پی مردم شماری از سران شورای کهانت در معیت قیافا روان شدند و از پی ایشان پیلاتس حکمران رومی نیز با ندیمان خود به آنجا ایسا و <تصفيق> هواریون در جنگلی هستند که خیلی مردم رو میبینن حالت هکیب چیاری جهدی افرام؟ سبور باشی و تماشا کنید قیافهها عصای بلند خودش به بوعض میده و به طرف عیسی که در کنار هواریون ایستاده میره و ناگهان بر خاک میافته ادنیا خدای ما ای کاهن مطرود چه میکنی عیسی اونو از روی خاک بلند میکنه از خداوند بترس از خدای زندهٔ ما و این مردم بترس نفتالی با عیسی صحبت میکنه ساعت‌ها سر, سر یهودیه به خاطر تو به جنبش درآمده تا جای که همه مردم آشکارا میگن تو خدایی تنها به خاطر خاموش کردن آتش این فتنه بود که ما ناچار شدیم به اتفاق پروگراتور روم به اینجا بیاییم حالا از صمیم قلب از تو تمنا داریم این آشوبی رو که به خاطر تو شده، از بین ببری کارا اومد به تفرقی کشیده گروهی میگن که تو خدایی بعضی میگن که پسر خدایی بعضی هم میگن که پیغمبر خدایی ای رئیس کاهنم تو چرا آشوب بپا می کنی؟ مگر تو هم دیوانه شده ای؟ مگر نبوت های پیامبران و شریعت خدا را یکسره به فراموشی سپرده ای؟ به خدایی که جانم در پیشگاهش می سرگند من از آنچه مردم در بارم میگویند و مرا برتر از ایک انسان می بیزارم تو گفتن آن سخن مرتکب مسیحیت بزرگی شده ای درسته ما همین امروز نامهای به سنای محترم روم خواهیم فرستاد تا تگ آن دستوری صادر شود که هیچکس از این لحظه به بعد مجاز نیست تو را خدا یا پسر خدا بنامد برنبا سخن ایسا رو مینویسه عیسی به سمت پیلاتس و لنتوس میره بعدها که شما موجب تسلی من نخواهد شد زیرا از همان جا که نور می ظلمت روی می آورد ولی تسلی من در آمدن پیامبری است که هر عقیده و باور دروغین را که در من گمان برده اید برمی او آین او گسترش پیدا خواهد کرد و همین جهان را فراخر چنانچه خدا به ابراهیم اینچنین وعده داده است همچه که مرا تسلیمی میدهد این است که دین او را پایانی نیست زیرا خداوند خود از اساس دین او محافظت خواهد کرد در پی سخنان ایسا آتش فتنه در یهودیه فرو است و حکمران رومی نیز نامه ای در باب امر فرزند مریم به محضر سنای روم درستم سنای روم سال سی و میلادی عالی جناب سجانوس تصویب این لایهه به هیچ عنوان از وجاهت عرفی و قانونی برخوردار نیست پذکاره به جایی بود سنتا رسته این لایه فاقد هرگونه مشابهت تاریخی است، اما دست کم این امتیاز رو داره که مفاد اون به زیان قوانین جاری و ساری امپراتوری نیست او با تنظیم این لایه و به خاطر کسب اجازه از سنا خواسته که مانع از ایجاد هر مرج مذهبی جنونامیست در سرزمینش بشه. آرچومارچ در نا آرام ترین مستعمره روم یعنی فلسطین. استیگس سنا برای عدم اجابت درخواست پروکراتور لایق ما چه دلیل موجهی میتونه داشته باشه؟ ما با تصویب این لایحه دستشونو بیارم. تصویبشون. شبیه در اورشلیم نیقودیموس کاهن خدا ترس شورای کهانت که ارادت قلبی وافری به پیامبر جلیل داشت پنهانی عیسی و هواریون او را به میهمانی در خانه خود دعوت کرد ای نیقودیموس، به من بگو اول بار که مرا در حیکل سلیمان دیدی به قلبت خطور کرد که من آمدم تا شریعت پیامبران پیشین را زاهل کنم آری ای به هستی خداوند سوگند اگر می ی روایت های به فریسیان دروغگو و عالمان شریعت تورات موسی و کتاب پدر ما داوود نبی تباه نشده بودند از این بدان که خداوند کلام خود را بر من نمی بیکن. چرا تنها از صحف موسی و کتاب داوود سخن بگو امروز هر لبوتی تباه شده تا با آنجا که اکنون مردم چیزی را به ملاحظه اینکه خدا به آن امر فرموده طلب نمیکنند، بلکه نظر ایشان به آن است که آلمان چه گفته و فریسیان چه می گویا که خدا بر خطا بوده و بشر خطا نمی بس وای بر این گروه کافر خونهای بناحق ریخته پیامبران و صدیقان و خون زکریای نبی که همین بزرگان کهانت که او را میان حیکل و مذبه کشتند با ایشان چه خواهد کرد؟ کدام پیامبری آمد که او را مخهور نکردند؟ کدام است که او را وانهاده باشند تا به عجل خود بمیرند؟ از دیکه است هیچ مؤمن راستینی را در این دیار باقی نگذارند و اینکه ایشان در طلب منند تا مرا بگوشند مباهات میکنند که از اولاد ابراهیم خلیلند و حیکل مجلل اورشلیم را در مالکیت خود دارند به حسنی خدا سوگند که ایشان اولاد شیطانند و به همین جهت اراده انلعین را در این امت اجرا میکنند چون سخن عیسی به آخر رسید مریم مجدلیه که از مریدان مخلص پیامبر جلیل بود مویه کنان وارد شد و... چه شده این مرگم؟ برادرم لازن برادرم برادرم چه؟ داره میبیره زاری مکن چطور زاری نکنم اونم در حالی که تنها برادرم در شرف مرگه در بیابان مراسم عزاداری لعازر برادر مریم مجدلیه برگزار میشه آتش آتشی افروخته شده. عیسی و حواریون به نزد خانواده داغدار میان زنان کل می کشن و عده دف می نمزن. مرده به پیش مریم داغدار میده سرورم تو به این کمترین کنیزت گفته بودی که برادرت نمی میره خود تو به من گفتی او نمورده نمورده ما الان چهار روز جسدشو تیه گور گذشتی مرده واقعی کسی است که بمیرد بیام که از جانب خداوند به رحمتی دست یافته باشد لعازر نمیده بلکه خفته است عیسی به نزدیک مقبره لعازر که همچون میاد زنان و مردان نگران نگاه میکنه مریم دلهوره داره عیسی بر خاک زانو میزنه و با خدای خود صحبت میکنه ای پروردگار عالم ای خدای ابراهیم اسحاق و اسماعیل بر مصیبت این دو زن رحم آور و از خزانه مجد و اکرامت بر ما این فرما لازم بخیز بخیز دو مرد سنگ جلوی اتاق که قارمانند رو بر می‌دارن. پیکری پیچیده شده در پارچه‌ای سفید در حال راه رفتنه. همه از دیدن اون تعجب کردن. بعضی ترسیده و بعضی خوشحال. مردی به آرامی به سمتش میره. پارچه روی صورتش رو بر لعازر. زنان ناباور گریه می‌کنن و مریم خوشحال عشق می‌ریزه. چهره لعازر. سفید شده ولی اون زنده است معجزه دیگر از عیسی ناصری در شهر دختنوازان و دوهلنوازان در کنار دیگر مردم شهر از ورود عیسی و هواریون استقبال میکنند یهودام خودش رو به عیسی نزدیک کرده و دیگر هواریون پشت سرشند مردم قبای تن خودشون و فرش زیر پای عیسی میکنند بیفار دو کاهن و روین از پله ها پایین میان و ناراحت شورهای حیجان مردم را میبینه و در پی چاره و نقشی اونها رو نظاره میکند. تا شرط موث رو تمام کنم. آفرین رو تو فکر من خون مطلب از این قراره زنی رو پیش ناسری میبریم و گواهی میدیم که اونو در این گناه چ گرفت امر ناسری در مورد اون زن از دو حال خارج نیست یا اونو مجازات میکنه؟ یا نمیکنه شک سومی هم وجود داری اگر مجازاتش نکنه؟ بر خلاف شریعت موسی حکم کرده چون در قانون موسی آمده که چون این نجسه و باید کشته بشه و اگه مجازاتش کنه بر ضد رو بشه خودش عمل کرد چون اون مدام از رحمت و توبه پذیری خدا دم میزنه به شهادت این خادمان شریعت تو باید سنگ سادشی رایی سنگ سادشی ایسا اونجاست آه... آه... بذارید پسر مریم در موردش حکم کنه آره درست میگه اون که دادر قانون موسا رو بهتر از سرانی که مقدس بلده باید در این بار حکم کنه ده ده ده ده ده ده ده. من بیگناهم بتا... من میگه میگه به آه... این شهر اومدم تا شوهرم رو پیدا کنم چه شهادت می که این زن گناه کرده؟ من من دیدم که این زن گناه می کرد منم دیدم خدا تو من اگه اومدی از شریعت موسا پیروی کنی پس قوانین موسا را اجرا کن اجرا کن اجرا کن ایسا از جماعت مرد و زن فاصله میگیره و در مقابلشون میایسته زن بین جمعیت میره. ایسا بر زمین میشینه و با گچ بر زمین مستطیلی میکشه ای بر زمین ظاهر میشه در این آینه بنگرید آن کسی که گناه نکرده او اولین سنگ روز. همه در سکوت فقط مینگره مردی گستاخ خودشو به آینه و ایسا میرسونه میشینه و در آینه نگاه میکنه چهرهٔ خودشو در آینه همچون حیوانی میبینه ترسیده دوباره نگاه میکنه شاید اشتباه کرده نه درسته مرد بلند شده و فرار میکنه از نگاه کردن تفره میرن چون میترسن ایسا نزد زن میره زن به پای ایسا زانو میزنه ای زن کجای کسانی که میخواستن تو را مجازات کنند تو پیامبر رحمتی چنیدم هر کجا که باشی مایه برکتی همه رفتن. و امر من گمراه به اختیار توست برخونده با نام خدای مهربان با تو می توانی بردی برو و پس از این گناه مکن روین کاهن ازم و کاهنان دیگه این لازر... لا را راه میره عارف میزنه میره در بین مردم و براشون از کرامات عیسی خطابه میخونه باکشیدش لازارو نه بله بله لازارو اول <تصال> باید اونو کشت توسط کی من برای این کار شخص مناسبی رو در نظر گرفتم اون کیه یه ثنابی فریسی جوان خبرچین زبرداستیه مثل <تصال> ماهی لیزه و مثل مار حشیار تو اکادمی یونانی ها درس خونده در ضمن یکی از باهوشترین شاگردان فریسی جلسه شریعت استاد گمالایی محسوب میشه بی اقراق باید بگم که واسط اطلاعات مذهبیش هیرتاوره بارها دیدم که چطور بر روی سکوی خطابه با موعزهاش مردم رو میخکوب میکنه خوبه بدونید که اون شهروند رومه و من از همین حالا روی اون دونبان یک از اصلی نسلیمون با امپراتوری در آینده حساب میکنم رویین از پشت پرده مردی سیاه پوش رو بیرون میاره و نزد بقیه میبره مردی با ابروهای گره خورده و حیکلی دراشت اون الان در محضر قیافاست. است اسم چیه؟ شاول اهل کجایی؟ انتاکیه. پنیریه یا فعلا شهروند روم هستم شب. در کوچه حرکت میکنه که باراباس صداش میکنه لازر میسته لازر باروباس آروم به اون نزدیک میشه لازر حرکت میکنه که باراباس از پشت به اون حمله میکنه و با ضربات محکم خنجر اونو مجروح میکنه لاوزر تلو تلو خران خودش رو به سکوی می‌رسونه. شاول از تاریکی بیرون میاد و لاوزر او رو می‌بینه. لاوزر می‌افته و جان به جان آفرین تسلیم میکنه نگاه شاول و باراباس به هم گره می‌خورد. مریم مجدلیه از از کوچه رد میشه و وارد خونه میشه پرده آویز رو کنار میزنه وارد اتاقی میشه که زنان موی کنان در کنار جسدی ایستادن که در دو طرفش آتشگانی افروخته است. جسد لازره مریم مقمون در کنار جسد برادر میشه شورای كهانت برای قتل پیامبر جدید به دست زوار معبد نقشه پیچیده‌ای طراحی کرده بودند. از آستانه عید فصح بود، کیسا و شاگردان او به معبد سلیمان وارد شدند. ای عیسی، مگر اون چرا که پیش از این در حضور آلیجاه دیافا و حاکمان رومی و هیرودوس پادشاه بهش اقرار کردی، از یاد بردی؟ نه؟ از یاد نبوردن مگر تو سراحتاً به ما نگفته بودی که من نه پسر خدا هستم نه خدا هستم و نه اون آخرین پیامبر موعود براموش نکردم در این صورت بگو از آمدنت به در آستانه ایده فسح اون هم با این جماعت انبوه مردم کوچه و بازار چه منظوری داری؟ ای عیسی کهانت مقدس در تیه این قرنها به ما این گونه آموخته که آخرین فرستاده منجی پیغمبر آخر الزمان از نوادگان جد احلای این امت یعنی اس آقه حالا ما که شرح این نکه رو از زبان تو بشنمید شاید چرا که در پیان هستید و تمه شنیدن آن را از زبان من دارید دروغی بیش نباشد حالا که تو و یارانت خوب می دانید که من اهل دروغ نیستم یعنی به گمان تو ما خادمان شریعت موسی تا بدین دین حد از شنیدن یک سخن راست گریزانین آره چون اگر به شما دروغ میگفتم تو ای کاهن ازم و شما ای فریسیان و کاهنم با تمامی بنی اسرائیل منو پرستش می کردی. ولی از اونجا که من جز سخن حق با شما کلامی نمیگویم، همگی شما به دشمنی با من کمر حمد بسته اید و خواهید مرا بکشید این یک افتراع بی شرمانه است آی مردم شما شاهد باشید که در روز روشن در خانه خدا چگونه به کهانت مقدس افترا می بندن. شاهد باشید حالا دیگه برای سادله افراد این امتم واضح شد که در پشت این چهره مقدس نما و ظاهر و صلاح تو شیطان پرید بنهان شده بله و این همون شیطانه که تو را انقدر گستاخ کرده که در برابر مشایخ سنهدرین و این صفار هیکل مقدس این گونه به این کاهن پاک دین خدا جسارت می ای جماعت کاهنم و شما ای فریسیان هر که من مرتکب گناهی شده بودم چرا به جای اینکه که بیگانه شریری دشمن بدارید نصیحتم نکردید اگر من مرتکب گناهی شدم نکوهشم کنید نکوهشی برادرانه تا خداوند شما را دوست بدارد اما مادامی که شما با من خصومت میبرزید و قادر به اثبات گناهی برای سرزنشم نیستید همین دلیلان است که شما همگونه که خود را میخانید فرزندان ابراهیم خلیل نیستید تا آنجا خداوند را دوست داشت که تنها به در هم شکستن بودهای باطل نمرودی هم و کنار گیری از خاندانش اکتفاله نکرد بلکه میخواست نخستین فرزند خود را نیز برای اتعاط از امر خداوند قربانی کند. ما بزرگان سنهدرین همین یک سآلو از تو داریم در صدد کشتن تو هم نیستیم به ما بگو کدام یک از دو پسر ابراهیم منظور توست اسحاق جد اعلای ما یا اسماعیل جد اعراب خدایا واه باش که این قیرت شریف توست که مرا آتش میزند آنگونه که نمیتوانم از گفتن سخن حق خاموش بمانم به شما میگویم آن فرزند همان اسماعیل بود که آخرین منجی پیامبر معود باید از دودمانه هو به این جهان بیاید و بدانید ای بنی اسرائیل من فرستاده پروردگار به سوی شما هستم تصدیق کننده چورات و بشارت دهنده به آمدن پیامبر مود که نامش احمد به هیجان آمده از فتنه شیطانی کاهنان در سنگباران فرزند مرگم پاک از یکدیگر دیگر میجستند. اما به یمن مکر الهی عیسی و حواریون او به سلامت از میان جمعیت کینتوز خارج شدند لیکن هر یک از فتنه‌زدگان گمان می فردی را که آماج سنگباران خود را داده کسی نیست مگر ایسای مرسل کاهن اعظم به نزد پیلاتس اومده پیلاتس برای خودش نوشیدنی میریزه جناب قیافا بگید بدونم اون همه قلوه سنگ و چوب و چماغ رو دیروز چه کسی پای های صحن معبد تلم بار کرده بود؟ من چه همه چیز رو میدونم به من واضح بگو چی میخوای البته ما پول زیادی به شما تقدیم میکنیم جنرال عزیز من برای دعوت حضرت علی به شرکت در یک اعتلاف سودمند به اینجا آمدن اعتلاف سودمند؟ بسیار متاسفم جناب غیافو من یک کهنه سربازم ندلال از دکه های سرافی معبد شما البته مقصودم این بود که ما همه انسانیم و بالاخره نقاط مشترکی با هم داریم همین نقاط مشترک؟ بین ما و شما؟ شما ابرانی هستید و ما رومی چه نقاط مشترکی؟ شما فقط و فقط در پی جلب منافع مادی خودتون هستید و بعض ولی ما به یک اصولی هم پایبند هستیم اون خدای نادیده ای که شما مرتبزش دم میزنید همون منافع مادی شماست در حالی که ما رومی ها اینطور نیستیم فرق میکنیم قیافا کمی سکوت ام. میکنه پیلاتس نوشیدنی می‌نوشه. پول زیاد به قدر آیدات ده سال شما حضرت جنرال کافیست با ما چنار بیاید. همین الان در دستور میدن که از خزانه هیکل یک جا به حضورتون تقدیم بشه یک رقم مطلوب در برابر یک عمل نامطلوب از من میخوای کسی را بکشم که به ساحت قوانین روم متعرض نشده نکنه شما از چیزی وحشت دارید حق با شماست یانردال حق با شماست آقایون وحشت دارن میترسن خونه این مرد جلیلی دامنگیرشون بشه پس چه بهتر گناه صلاخی مردی که عوام این مستمره او رو به چشم یک مرد مقدس نگاه می کنن بیفته به گردن کفار بیگانه از شریعتشون ایسا در جایی سرسبز سبز پیش هواریون میاد ای هواریون من است زمانی فرا رسد که از میان شما بروم از شایسته است در قیاب من بر اعتقادتان ثابت قدم بمانید من نیز از خدای مهربان مسئلت خواهم کرد تا دهنده دیگر را به شما عطا فرماید پس چون او به این آلم بیاید همه چیز را به شما و دیگر پیروان من تعلیم خواهد داد و تمامی آنچه را که در این سالها من به شما گفتند به شما یادآور خواهد شد و بر حقانیت من و تعالیم من شهادت خواهد داد پس بر اثر تهدید هیرودوس که با غیصر تیبریوس مناسبات دوستانه داشت جنرال پلاتس چاره‌ای جز تمکین نیافت و فرمان دستگیری عیسی را به سربازانش صادر کرد تا پیشگویی داوود نبی که از عیسی آخرین پیامبر بنی اسرائیل خبر داده بود تحقق یابد آنجا که داوود فرمود و فرماندهان زمین و پادشاهان آن بر ضد یگان قدوس بنی اسرائیل متحد خواهند شد زیرا او به نجات اهل عالم بشارت می‌دهد. انشب در اصنایی که عیسی با هواریون خود بر صفه شام نشسته بودند به ناگاه مریم خواهر لعازر وارد شد در حالی که شیشه حاوی عطری گرانبها را با خود آورده ایسا و هواریون در کنار چند زن مشغول خوردن تحبیل مریم مجدلیه با شیشه عطر در پای عیسی زانو می عیسی ایسا هم می زن می مریم عطر رو بر سر عیسی می ریزه و دعایی به درگاه خدا میکنه یهودا عصبی و از روی حسادت به آن دو نزدیک میشه این چه کاری بود که کردی دیوانه چه می گویی؟ من تو این فکر بودم که با پول این عطم میشود از شکم سی نفر فقیر گرست نرسیر همین یهودا سریع از تأصف تکون بیده بفهم داری در محظر چه کسی حرف میزنی ای یهودا من از آنچه به دل داری آقا کمی بیش از آنچه سبر کردی صبور باش بس همه را به تو می میگذارم جاد به حضور کاهنان و کاهن اعظم رسیده بیا بهبه با همه جمن چقدر موجب مسررته هالی آبان اوور <تصفيق> بیا جلو مردی به اونها نزدیک میشه مم. معرفی میکنم آلی یهودا فرزند شمعون از خریوتی ملقب به کفتار در محضر جاد در گوش کاهن اعظم زمزمه میکنه پول میخواد <تصفيق> <تصفيق> سی که یه نقنه چطور؟ شب عید فسح آن سال برای شاگردان عیسی حال و هوایی دیگر داشت و قدر بود که آن شب عیسی آخرین شام عید را با هواریونش بخورد و سپس هواریون و عیسی به دور صفره جمعه و مشغول خوردن تمام. عیسی به ناگاه بلند میشه عیسی پای هواریون رو در تشتی که خودش آورده شستشون میده شب زمان خواب فرار رسیده هوریول و ایسا در خانه هستند که مهموران حکومتی به در خانه اومدن ادامه حکایت به روایت اناجیل چهارگانه بنابه پراسور در رو باز کنید رومی ها؟ هشت دار قایم شدید در کنید بلاخره در درو میشکنن و وارد میشن سرواز رومی یکی از هواریون رو حل میده عیسی اسیر شده شبانه اونو دست بسته از دروازه عبور میدن و به پیش کاهن اعظم میارن در جلو دو کاهن راه میده نیقودیموس مقموم نگاه میکنه عیسی دست بسته در قصر پیلتس علاج این خبیس نکه تازیانه میر قذبهای رومیه و ایسا کلامی نمیگه یهودی ها کاهن های شریعت شما تو رو نزده من دادن تا فرمان قتلت رو صادر کنم لابود میدونستم که این کار برای من بسیار ساده است نمیتونم تو رو اختیارشون بگذرم تا به سلیبت بکشن حرف زدنم یادت رفته من نمیخوام گناه کشتن تو به گردن من بیفته. میدونی چرا؟ چرا حرف نمیزنی؟ رازی هسته کشته بشی؟ به سلیمت بکشن آره حرف بذر سربازان رومی ایسا رو دست و پای در زنجیر میبرن یکی از سربازان آب دهان بر صورت عیسی میندازه و عیسی فقط سر برمیگردنه عبرانیان سندوخچه ای رو برای پیلاتس میارن ایسا رو به ستونی در شهر بستن سربازی پیرهن اونو از پشت باره میکنه و تازیانه نمیزنه ایسا در سکوت فقط درد میکشه عبرانیان صندوقچه رو در برابر پیلاتس و آدریان باز میکنن پر از طلاست. سمام بدنش سیاه و کبود شده غربن با دیدن جسمت در همچیکستش دل سختشون نرم بشه و از ریختن خونش صرف نظر کنن ایسا رو از دستانش آویزان میکنن و پیلاتس و نظاره نظرگره ایسا با تاج خاری بر سر پای برهنه صلیبی چوبی رو دوش میکشه هواریون مریم مجدلیه کاهنان و مردم دیگر اونو همراه میکنن سربازان رومی صلیب چوبی رو بلند میکنند. پیکر خونآلود ایسا بر سلیب بسته شده با میخهایی کف هر داده است و دو پا که روی هم قرار گرفته کاهنان شادمانه مریم مجدلی عشق در چشمانش حلقه زده سربازان رومی با چیدن آجر صلیب رو در زمین سفت میکنن و پیکر بیجان و خون آلود عیسی بر صلیب حال ادامه حکایت بر اساس منابع اسلامی و انجیل برنبا عیسی به تنهایی قدم میزنه و با خدای خیش صحبت میکنه ای پروردگار من نیک می که فریسیان بغز مرا در دل دارم و کاغنم بر قتل من مسمد من بنده تو بر به رحمتت دعاهای بنده را بشنم و مرا از دامهاد ایشان برحم زیرا توی رهاننده من ای عیسی بنی اسرائیل مکر ورزیدند و خدایت نیز مکر می برزند. از خدا بهترین مکر کنندگان است اینک پروردگار تو می ای فرزند مریم همانا امشب تو را از این عالم باز می گیرم و به سوی خود بالا میبرم و ساخت تو را از آنان که به تعالیم تو کفر ورزیدند پاک می و آنان را که از بشارت تو پیروی کردند تا روز قیامت بر آنان که کافر شدند برتری میدهم سپس بازگشت شما به سوی من است پس در آن روز میان شما در آن چه اختلاف می کردید حکم خواهم کرد جبرئیل در یک فضای نورانی بر اون نازل میشه به همان شب آخرین شام باز می کردیم هواریون همه خوابند و ایسا ایستاده اونها رو نظاره میکنه هنگام رفعت توست یا روح الله لبک یا جبرائیل. ایسا از پله ها بالا میره به سوی نور مدتی گذشته یهودا از خریوتی به اونجا اومده و در پی اجرای نقشه شوم کاهنان به دنبال عیسی میگرده عیسی رو نمیبینه لحظه این نور شدیدی در چشمانش احساس میکنه نور خداوندی رو تا باره بر زمین میافته. نه, نه! نه! از خدای عجیب کار عجیبی کرد یهودا در رخصار و گفتار شباهتی شگفتانگیز به فرزند مریم مرخ دستانش با صورتش میپوشونه سر بلند میکنه دست از صورت برمیداره چهره اون همچون چهره عیسی شده هگلاوی اسرت کجااسمی کرد. کرد. رومیان در رو باز میکنن و داخل میشن هواریون هر یک به گروشه میرن رومیان با یهودا در حیعت عیسی مواجه میشن هم وارد میشن و یهودا رو میبینن خودشه ایساست اون رفته لباید از اون طرف رفته طله چی هستیم بگیریدش؟ من یهودا، یهودا. نکنه منتظری که با جادو دوباره فرار کنه یهودا رو چش بسته به معبد نزد کااهان آورده. قیافا بر صندلی نشسته و اعتراض همه را شاهده. بزنیدش، دش بیسونی اخسی و چشمان یهودا را باز میکنه قیافا با اسای بلند و طلاییش از جا برمیخیزه. بزنیدش نفتالی بر پشت یهودا تازیانه های محکم میکوبه روی نزدیک میشه سر اونو بلند میکنه و سیلی محکمی بهش میزنه که در واقع به یهودا زده جاد شادمان و خندان داره میره که به پتروس برمیخوره جاد یقه پتروس رو میگیری. پتروس؟ واسه شب تو سهن و سرای معبد شب جالبی رو انتخاب کردی از جون من چی میخوای؟ <تصفيق> جون تو؟ چه شده؟ انگار جن دیدی؟ از جن هم بدتر عرف دهان تو بفم شمون ماهیگی حتما میخوای بگی حواری پرابا هم نیستی؟ من هنوز هم حواری پرابا گرسش هستم ولی اون معلم من نیست پلاتس در کاخش قدم بیزنیم ایسا یا به عبارت دیگه یهودا رو نزد اون آوردن پلاتس با اون صحبت میگن اگر شما راستشم بگم در را برمی کنیم چی میگه لنتوس؟ گروان پرت و پرا به هم میبافه احمقا به شرف سروازیم قسم نبیدونم به چشمام چه میگن این ایساس اعتماد کنم یا به ندای درونم که به هم نهیب میزنه و میگه این هیچ شباهتی به ایسای ناصری نداره میگه یهودا در ظاهر حقیقه خودش با خودش صحبت میکنه یهودا سر بزیر انداخته کاهن اعظم قیافا به همراه کاهنی دیگر به پیش در دربند میان به اون نزدیک میشه مردم جلوی کاخ پیلاتس جمع شدن سربازان مانع هم هستن پیلاتس بیرون میاد و با مردم اورشلیم صحبت میکنه. عیسای مبدل هم در مقابل اونها ایستاده هواریون هم در جمع هستند مردم اورشلیم روم با شما صحبت میکنه جمیع کاهنان و رؤسای شما امروز منو یعنی روم رو به داوری فرا خوندند. ما هم خواستش اون رو اجابت کردیم. اون <ال> <برقی> ما؟ <التذار> تا <کیا برانده> لاقل از یک جهت این مرد سزاوار مرگ نیست بلکه مستحق ترخمه. اون میگه که عیسی نیست بلکه همون یهودای از خریوتیه که سربازای ما رو هدایت کرد تا عیسی رو بگیرن و بازو میگه که عیسی جلیلی با جادوی خودش او رو به این شکل رو شمایل در برده خشتن او ظلم بزرگیه و او بیگناهه ولی اگر او واقعا عیسی باشه و این که ایساس پروازه که او عقل و شعورش رو از دست داده در این صورت قتل یک دیوان است ناروا اون ایساست ایسای ناصری ما اونو خوب میشناسیم اگه گناهکار نبود که ما اونو به دست تو تسلیم نمی کردیم. <تصفيق> اوني حساب جغان ما و فرزندان ما اونو بکش <تصفح> پس خداوند بر دل‌های سخت بنی اسرائیل مهر نهاد به سبب کفشان و آن مهتان عظیمی که به مریم پاک دامن زدند و نیز به این سبب که گفتند ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم حال آنکه آنان عیسی را نکشتند و او را مصلوب نساختند بلکه در این امر دوچار شبه شدند چرا به درستی آنان که درباره فرجام امر و دوچار اختلاف شدند خود در تردید بودند و به آن چه می گفتند یقین نداشتند آنها صرفا از گمان خود پیروی می کردند و قطعا ایسا را نکشته بودند بلکه خداوند او را از این جهان به نزد خود فرا بود و به راستی که خدا پیروز مند و به هر چیز داناست. قرآن کریم سوره نسا آیات 156 تا 158 من فرصت و غنیمت میشمارم و از طرف خودم و دیگر همکاران تولد عیسی مسیح علیه السلام رو خدمت همه با خدایان عزیز تبریک ارز می کنم. و ما معرفی عوامل برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار مرکز هنرهای نمایشی و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای فرشاد آذر نیا و بنده که در خدمت شما بودم بهرام سروری نژاد امید دارم که بتونم هفته آینده و هفته های بعد هم در خدمت شما باشم با این امید شما رو به خدای بزرگ می سبرم. خدا نگه دارم. هبیان.net جنجی نیسو تی